و ایذ یرفعو ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا اینکه أنت السمیع العلیم و انگاه که بالا میبرد ابراهیم پایه را از خانه کعبه و نیز اسماعیل می گفتند پروردگارا بپذیر از ما تو خود آن شنوای دانایی ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امه مسلمه لك وارنا مناسکنا وتب علينا وتب علينا ن و قرار ده ما را دو فرمان بردار برای خودت و از فرزندان ما نیز گروهی فرمان بردار برای خود و بنمای به ما آین عبادی ما را و برگرد بر ما از سر مهر امانا تو خود. آن بس تو بپذیر مهربانی ربنا و بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم و ويعلمهم الكتاب والحکمه و يزكيهم انك انت العزيز الحکیم پروردگارا و برانگیز در میان آنان پیامبری را از خودشان که بخواند بر آنان آیه هایت را و بیاموزد به آنان کتاب قرآن و سنجیدکاری کاری را و پاکشان سازد همانا تو خود آن پیروز مند کاری. و من یرغب عن ملتی ابراهیم الا من سفیه نفسه وَلَقَدْ اصطفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ و چه کسی روی برمیتابد از آین ابراهیم جز کسی که به سبکسری افگنت خودش را در حالی که به راستی برگزیدیم او را در دنیا و بیگمان او در آخرت قطعا از شایستگان است اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین آنگاه که گفت او را پروردگارش تسلیم باش گفت تسلیم شدم برای پروردگار جهانیان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 و سفارش کرد به آن ابراهیم پسران خود را و یعقوب ای پسرانم همانا الله برگزید برای شما این دین را پس نمیرید البته جز در حالی که شما فرمانبر او باشید ام کنتم شهده يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلىك قالوا نعبد إلىك وإله آبائك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إله واحد و له مسلمون آیا بودید شما حاضر هنگامی که فرارسید یعقوب را مرک؟ آنگاه که گفت به پسرانش چه میپرستید پس از من؟ گفتند میپرستیم خدای تو را و خدای پدرانت ابراهیم و اسمایل و اسحاق را که خدایی یگانه است و ما برای او فرمانبری. ثل که امته قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عن ما كانوا یعملون آنان گروهی‌اند که همان‌ها درگذشتند برای ایشان است آنچه به دست آوردند و برای شماست. آنچه به دست آورده اید و پرسیده نمی شوید از آنچه آنان میکردند